قُ هل يست الذي يعلمون والَّين لا يعلمون إ ما يتذك م الب بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند هما؟ تنها خردمندان پند میپذیرند این <تصفيق> الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره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 وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولم بتقبل الله تعالى وتاعته ثم علموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه وهو أصدق القائلين يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَسْدُوْقِ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَذِ مِنْ لَزَّاتِ بحمد و سلوات و سلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و موفقیت و سربلندی برای دکایی که شما عزیزان خدا رو شاکرم سپاس گذارم که چون این توفیقی و فرصتی به دست اومد تا از روی منبر جمعه با همدیگه دیدار و ملاخاتی داشته باشیم جدر از همه عزیزان بلخص امام جمعه محترمتون تشکر و تقدیر ویجهی بشه یکی از مهمترین و اصلیترین دردها و گرفتاریهایی که ممکنه یک مؤمن و یا یک خانواده مسلمان و یا یک جامعه اسلامی با اون مواجه بشود و دوچار اون گرفتاری بگردد درد و رنج و بیماری غفلت هست چیزی که چقدر قرآن و همچنین پیغمبر علیه السلاط و السلام ما رو برحضر دشتن از اون غفلت از خدا و غفلت از قیامت این بدترین و خطرناکترین بیماری ها و درد است که ممکنه یه انسان به اون دچار بشود نه اینکه دنیای انسان رو برباد می بلکه آخرت انسان رو ویران می کند کسانی که معال و سرانجامشون یازن به الله جهنم است در سایه و نتیجه غفلت بوده وقتی انسان از خدا و قیامت غافل بشود دست به هر کاری میزند من یه سوالی دارم از همه عزیزان هر کجا باشیم این سوال رو مطرح بکنیم وقتی ما در میان مسلمانان اون همه گناه ها اون همه معاصی و نافرمانی میبینیم آیا شما تصور میکنید چون مسلمانان نمی دانن اونی که نماز نمیخواند نمیدانند که گناه بزرگ میدانند؟ همه میدونن بلخص نماز چه جایگاهی داره همه مسلمان ها از بزرگ و کوچک می دانن. اما چقدر ما انسان‌هایی هایی داریم که یا بیناززن یا تو نماز خوندنشون بیپوا و سهلنگارن سستی میکنن. ماه رمضان که میاد کسانی که روزه خوری میکنن نمیدانن که روزه خوردن با عمد حرام است تو گناه بزرگه میدونن چرا این کارو میکنن؟ اونی که دنبال ارتباط نامشروع یا اون چیزی که قرآن بهش گفته زنا میرود نمیداند که حرام است؟ میداند پس جهل و نادانی همیشه به عنوان عامل ارتکاب گناه نیست خیلی از گناه هایی که افراد انجام میدهند میدونن که گناه است میدونن که حرام است اما باز هم انجام میدهند و مرتکب آن میشوند در نتیجه غفلت و فراموش کردن و پشت سر و بیپروا بودن است از روز قیامت از حساب و کتاب دهشت و دوزخ رو فراموش کردن است از اینکه الله جل آنهم مراقب و ناظر و موازب من هست، انسان فراموش می کند. این از غفلت، این از غافل بودن. اونی که دروغ میگوید مگر نمیدونه که دروغ میگه چرا کسانی که گناه می غالبا برای گناه کردن برنامه ریزی می که کسی اونها رو نبیند. آبروی آنها نرود کسی متوجه نشود چرا بعضی این این کارو میکنن؟ چون میدونن که زشته میدونن که گناه هست میدونن که بده است اما چرا انجام میدهن؟ چون غافلن از خدا مرگ و بعد از مرگ و قیامت رو از یاد برده ان. اونی که خیانت میکند اونی که مال مردم میخورد اونی که قسم دروغین میخورد گواهی زور و باطل میدهد اونی که تهمت می‌زند، غیبت می‌کند، نمامی می‌کند، اونی که مشروب می‌خورد، اونی که دنبال مال و جان و ناموس مردم است، همه این گناه ها از بزرگ و کوچک ما همه ماها یا اکثریت ماها مرد مسلمون زن مسلمون نپیران و سالمندان، حتی جوانان ما هم میدونن. پس علت اصلیه نافرمانی الله جل شأنه در میان ما امت اسلامی و مسلمانان قبل از اینکه جهل و نادانی باشد غفلت است و فراموشی است اما برای علاج و درمانش و برای جلوگیری اگر غافل نیستیم خدا رو شکر بکنیم اما کاری بکنیم که دوچار غفلت نشیم اگر خدای نکرده کسانی از ما دوچار غفلت شده ان. علاج اون چه هست درمان اون چیه ما وقتی مریض میشویم بیمار میشویم چقدر ناراحت میشیم به دکتر مراجعه میکنیم پول میدیم اگر پول نداریم قرض میکنیم که بریم دکتر که بیماریمون علاج و درمان بشود این بیماری و این دردی که داریم اگر هم نهایتش علاج نشود یه چند روزی تو این دنیا درد و رنج میکشیم نهایتشم هم میمیریم و با این مردن دنیای من و زندگی دنیا و این جسمو از دست داده ایم اما مگر نمیدونیم که بیماری غفلت بیماری فراموشی و نسیان به مراتب بدتر و خطرناکتر از بیماری جسمانی است چون اگر بیماری غفلت علاج و درمان نشود ایمانو از بین میبرد آخرت انسان رو برباد میدهت بهشت رو از انسان می گیرد پس کدوم بیماری بایستی بیشتر بهش دقت بکنیم و برای علاج و درمان اون اهمیت بیشتری بدهیم بیماری غفلت است که ایمان انسان روح انسان آخرت انسان رو دارد تهدید می کند ببینید یه حکایت جالبی است از امیر مؤمنان عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه زمانی که لشکریان و سپاهیان اسلام رو به جنگ میفرستاد و برای جهاد با دشمنان میدونید چه سفارش و توصیه میکرد به سربازان مسلمان میگفت ای سربازان مسلمان بدانید آن دشمنانی که در برابر شما قرار گرفته‌اند از روم و فرس گرچه عدد آنها از شما بیشتر است اسلحه آنها قویتر و مجهزتر است اما من از یک چیز دیگر از دشمنی بدتر است اون دشمنان بر شما میترسم و اون دشمنی که در درون خودتون هست از هوای نفستون اگر هوای نفس وسوسه شیطان بر شما غالب و پیروز بشود ایمان شما دین شما آخرت شما را از بین میبرد اما اون دشمنی که به عنوان یک انسان مسلح و مجهز است و رو در روی شما قرار گرفته اگر بر شما پیروز بشود شما رو میکشد نهایتشم شهید میشوید بس دشمن حقیقی هوای نفس است بیماری بسیار خطرناک غفلت است بایستی علاجش بکنیم علاجش چیه؟ درمانش چه چی است؟ چرا ما گرفتاریم؟ گرفتاری غفلت، گرفتاری معصیت، گناه ها اون همه معاصی میکنیم هم نمیشویم، توبه هم نمی کنیم. علتش چیه یا درمانش چیه من سعی میکنم خیلی خلاصه و کوتاه وقت تو رو نگیرم علاج و درمان غفلت که هم غفلت رو در خودمون علاج بکنیم و هم در خانوادهمون و هم در دوستامون و هم در همشهریامون این وظیفه است عزیزان تو جوون و مؤمن و مسلمون جوون مؤمن و مسلمون اگر یه نفر از دوستات رو راه بکنید ارشاد بکنید و به وسیله نصیحتت هدایت بشود از دنیا و مافی ها برا تو بیشتره اما علاج و درمان اون در دو نسخه در دو نکته خلاصه می شود چیز زیادی هم نیست یک نصیحت و پند و اندرز و موعزه. این یکی از راه های پیشگیری و جلوگیری از اینکه در گناه و معصیت و غفلت نیفتیم و اگر افتادیم برای علاج و درمان اون پند و اندرز است و ذکر فا این تنفع المؤمنین الله جل شأنه به پیغمبرش علیه السلام, و السلام می فرماین و ذکر تذکر بده پند و موعزه و اندرز و نصیحت بده به مردم که نصیحت و موعظه برای مؤمنان سودمند است چرا روز جمعه خطبه جمعه شرع و دینمون مقرر کرده خارج از همین خضیه نیست که در روز جمعه در طول یک هفته چند دقیقهی مؤمنان بیان حاضر بشوند و خطیب روی منبر پندی اندرزی نصیحتی بدهد که دلهای ما رو نرم بکند ما رو از غفلت بدر بیاره و در طول یک هفته که مشغول و سرگرم کار و بار و دنیا و زندگی هستیم دوچار غفلت و نافرمانی و معصیت خدا نشویم اینه که بخواهیم از همدیگر یه وقتی توی پدر توی برادر تو جمع خانواده پنج دقیقه ما نمیگیم هر روز دو سه روزی در طول هفته با اعضای خانواده مینشینیم یک آیه برای اونها ترجمه میکنیم یه حدیثی از احادیث و گهر بار پیغمبر علیه السلام و به اهل و خانواده من میگیم در روز قیامت قبل از این که زنای من و من به خاطر اون لقمه ای که اگر یه وقتی دیر بهشون رسیده، اگر پول و خرجی زندگیشون کم بوده، در مورد اینا قبل از اینکه از ما شکایت بکنن، در مورد جهلشون و غفلتشون و نادانیشون که به اونها تذکر ندادیم، نصیحت نکردیم، یقمون رو میگیرن در پیشگاه خداوند که ای خدایا اگر من نماز و درست نخوندم، پدر و مادرم برادر بزرگتر به من تعلیم نمیداد، به من نصیحت نمیکرد، اگر دروغ می گفته اگر غیبت میکرده اگر دنبال دوستان ناباب بوده اینه که پروردگار میفرمایند یا یا الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا ای مؤمنان خودتون و اهل خانواده خانوادتون رو از آتش جهنم حفظ بکنید نجات بدید ما روز قیامت مسئولیم در برابر همسرامون و در برابر اولاد و فرزندامون خدا از ما سوال میکند که آیا این امانتهای الهی رو پاس داشتیم یا خیانت کردیم اینه که پند و اندرز و نصیحت اصحاب و یاران پیامبر علیه السلام و السلام با اون جایگاهشون با اون ایمانشون با اون صداقتشون گهگاهی وقتی احساس می نگاه کنید چقدر میان ما و میان اون نسل عظیم و عرضشمن فاصله هست روزی از روزها حنظله رضی الله تعالی و یکی از اصحاب و یاران پیغمبر علیه السلام وقتی دیدار میکند با ابو بکر صدیق رضی الله تعالی ابو بکر مشاهده میکنه که حنظله غمگین است دلتنگ است ناراحت است میگه ای چرا ناراحتید میگه من حنظله منافق شده ام من منافقم میگه عجیب ای حنظله چطوری منافقید ببینید ما رفتارمونو نگاه بکنیم تا اونها میگه ای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی وقتی ما در جمع و حضور پیغمبر علیه السلام نشستیم وقتی در محضر و کنار رسول خدا هستیم علیه السلام و سلام گویا بهشت و دوزخ رو داریم می‌بینیم و نظاره می‌کنیم اما وقتی از محضر پیغمبر علیه الصلاۃ خارج شدیم با زن و بچه و کار و بار و زندگی مشغول شدیم اون حالت رو از دست می‌دهیم من احساس می‌کنم که این دوگانگی و این دو حالت است در ما و این نفاق است و منافقی من منافق شده هم. ببینید اونا چه حالتی؟ و ما شب و روز شاید گناه و معصیت بکنیم یه بار به خودمون نمیگیم که نکنه منافقیم نکنه ایمانمون از بین رفته نکنه بدبخش شدیم نکنه خدایی نکرده در این حالت بمیریم سرازیر گودال جهنم بشویم یه بار شده به خودمون بگیم ملامت و سرزنش بکنیم ابوبکر ارز کرد که ما هم به همین صورتیم رفتن پیش پیغمبر علیه السلام دردشون رو مطرح کردن اون بزرگوار فرمودن انسان لحظاتی دارد که ایمانش آج میگیرد و لحظاتی هم به کار و زندگی مشغول میشود اما ما غفلت چنان ما رو درگیر کرده با کار و بار و زندگی که ما رو به میدان گناهان و معاصی و نافرمانی خدا کشنده پس این بود که اصحاب حتی با اون جایگاهشون دست همدیگه گهگاهی میگرفتن به همدیگه میگفتن اجلس بنا من ساعت با دوستشون با رفیقشون میگفتن لحظاتی بنشینیم از ایمان از خدا از قیامت از مرگ از قبر بگو نصیحت بکن تا دل من نرم شود این دل سنگم که سنگ شده نرم شود شاید قطره اشکی از دیده از چشمم بباره ما شده در طول عمرمون یه قطره اشکی از ترس خدا از پشیمونی از ندامت از حسرتی که ما عمری بر باد داده ایم که خدای نکرده در روز قیامت اگر خدا سوال بکنه جوابی هم برا خدا نداشته باشیم پس پند و اندرز و نصیحت عزیزان روز جمعه زود بیایم. قبل از اینکه خود به شروع بشه گاه گاهی تو مسجد بنشینیم از اهل علممون از امام جمعهمون از دوستانمون که میدونن بخوام که بر ما حدیثی آیه پندی اندرزی بگن تا دلمون نرم شود این نقطه اول نقطه دوم برای زدودن و پاک کردن غفلت برای ایجاد ترس خدا برای اینکه مهار بکنیم هوای نفس یاد مرگ از بعد از مرگ این بهترین علاج بعد از پند و اندرز یاد مردن رو ذکر هذه من رسول خدا علیه الصلاه و السلام فرمودند بسیار یاد مردن بکنید چون اگر ما یاد مرگ مرگ سراغمون میاد در یک لحظه بدون اینکه خبر بکنه مرگ و مردن خبر نمی کند نه پیر نه جوون نه مرد نه زن نه سالم نه مریض هیچ کس مستسنا نیست ممکنه در هر لحظه ما بمیریم این بود که پیغمبر میفرمودن وقتی نماز نمازو بخونید چطوری نماز بخون بگو شاید آخرین نماز من باشه بله کسانی که رفتن یکی از نمازها آخرین نمازشون بوده ممکنه الان نماز جمعه بخونیم که میدونه که تا نماز عصر زنده بمونیم چقدر شنیدیم و خیلی از ماها شاید دیدیم جوانانی که در آوج جوانیشون و بهار عمرشون بودن تازه عقد کردن نامزدی کردن تازه عروسی کردن تازه ممکنه بچه شون به دنیا اومده در یک چش به هم زدن با یه سببی که خدا مقدر کرده جانشون رو به جان آفرین تسلیم کردن و مردند و رفتن ما هم می روییم. هر لحظه مرگ در انتظارمون هست و در کمین مونه اینه که بسیار یاد مرگ و مردن بکنیم سوال شد از رسول الله صلی الله علیه و وسلم که ای الناس اکیاس کدام انسان‌ها عاقل‌ترند، با باهوش‌ترند؟ فرمودن کسی که بیشتر یاد مرگ و مردن بکند و به و احسن خودشو آماده بکنه برای بعد از مرگ، خودمون آماده بکنیم برای قبر تنگ و تاریک، قبری که روزی از روزها پیغمبر علیه السلام بر لب قبری نشسته بودن قبر رو آماده میکردن تا مرده‌ای رو دف بکنند. صحابه میگن نگاه کردیم که پیغمبر علیه الصلا و السلام زار زار دارن گریه می‌کنند، اشک او سرازیر است بعد از اون سر رو بالا آوردن و فرمودن یا اخوتی لمثل مثل این برادرای من برای یک چنین لحظه و روزی که همه ماها اونجا سرازیر خواهیم شد برای اون لحظه تنگ و تاریک و گور قبر و قبر تنگ و تاریک خودمون آماده بکنیم و فرمودن ما رأی تو من درن قط إلا القبر أفضع و من خير از منظرها و صحنهای گوناگون بعد از مرگ بهشت و دوزخ و فردای قیامت و همه ها به من پیغمبر علیه السلام خداوند نشون داد اما وحشتناک ترین منظر و صحنه ای که به من نشون داده شد قبر بود تنگی اون تاریکی اون فشار اون سوال و جواب منکر و نکیر و تنهایی اون هیچ احدی انیس و همدمت نیست دوستانی که تو دنیا ممکن بود اون همه صفا و سمیمیت داشتن بهات میان خاک روط میریزن دفنت میکنن برمیگردن ممکنه برات گریه بکنن اما همراحت نمیان تنها کسی که حتی در قبر در تاریکی و تنهایی قبر و گورت همراحت هست عمل صالح ده. عمل صالح که پیغمبر علیه السلام فرمودن وقتی مرده رو دفت میکنید بعد از اون سوال و جواب قبر شخصی میاد وارد قبر می شود با چهره و صورت بسیار زیبا که خود شخصی که دف شده میگه تو که هستید با این صورت زیبات میگه من همون عمل صالحتم تو آدم مؤمن بودید در انجام اعمال صالحه میشتاوید به سوی گناه ها نمی رفتید اگر هم می رفتید و لغزش داشتید برمیگشتید من عمل صالحتم با یک چنین صورت زیبا کنارت هم ته اما اگر انسان گناهکار منافق مجرم و جنایتکار بوده انسانی میاد با چهره بسیار زشت و کریه و بد و ناپسن مرده میگه تو که هستید میگه من عمل زشتتم من گناهاتم به این شکل خداوند منو درآورده اینه که یاد مردن بکنیم بریم به زیارت قبور جوون من عزیز من سری بزنیم به قبرستان نگاه بکنیم اینا یه روزی زنده بودن نهایتا من و شما هم به انگورستان گورستان میرویم بریم تشییع جنازه بکنیم اونهایی که مریضن اونهایی که دردمندن اونهایی که پیرن جا گرفتهاند بریم به ملاقاتشون تا جوونی ما گل نزند هوای نفس ما رو فریب ندهد دوستان ناباب ما رو نفریبند برادران جوونا دوستانی که ما رو دعوت به سوی گناه مواد مخدر مشروبات زنا و فحشا بکنن اینا دشمن ترین دشمنانن که پروردگار فرمودن الاخلاو بعدهم عدو، الا دوستان بسیار سمیمی اونایی که بسیار سمیمی هستن در روز قیامت با هم دشمنن مگر متقیان در روز قیامت وقتی دوست ناباب دوست خودش رو میبینه میگه تقصیر تو بود تو بودید که ما رو بیناماز کردید، مشروبی کردید، دوست کردید، گنه کار کردید، میگه غلط کردید که با من بیای، اونجا از دفاع نمیکنه، دوست ما و هم است که به دردت میخوره تو این دنیا دوستان خوبی رو برای خودمون انتخاب بکنیم. من در پایان فقط سه آیه به ارزشتون میرسونم و به آرایزم خاتمه میدم. این سه آیه میدونی چیه؟ سه صحنه، تا لحظه، سه لحظه از لحظات حساس. که بالاخص انسانهای گنهکار، انسانهای غافل، انسانهایی که خدا رو و دین رو پشت سر گذاشته بودن، در اون سه لحظه حسرت میخورن، پشیمون میشون، تمنا میکنن که خداوند اونها رو به دنیا بر بگردونه تا عمل صالح انجام بدهن. کاری بکنیم که از زمره اون افراد نباشیم. یک لحظه، لحظه مردن است. لحظه که ملک الموت یا ازرائیل میاد، که روح انسان رو قبض بکند انسان هایی که غافل بودن سرگرم دنیا و گناه هم حسیت بودن امروز فردا میکردند کردند و توبه نمی کردند با بی با روز خوری با مشروب خوری با اعتیاد با دزدی و بدون توبه ملک الموت اومده که روح اونها رو قبض بکند حتی اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك در اون لحظه وقتی که مرگ سراغ یک چنین انسان های غافل می آید میگه که پروردگارا منو بر بگردون بر بگردون منو به دنیا تا عمل صالح انجام بدهم و اون فرصت هایی که از دست دادم اون لحظات حالا یادم میاد ماه رمضان ها گذشت نماز پنج وقت و صدای اذان میشنیدم روز جمعه بود لحظات فراوانی تو عمرم گذشت پشت سر گذشتم با غفلت با سهل با کاهلی با تنبلی خدایا منو بگردون تا با عمل صالح جبران بکنم عمل صالح زاد و توشه هست، هست رفیق و همدم و انیس قبرمون روز قیامت بر سر چیزی که ما رو وارد بهش میکنه به سبب اون به بهش میریم عمل صالح است ما رو بر به پروردگارا یه مهلت یه فرصت چند دقیقه ای به من بده ما اون همه روز و هفته و ماه و سال میگذرد اما در وقت مردن آدم تمنا میکنه یک دقیقه خداوند به انسان فرصت بدهد که در این یک دقیقه چند مرتبه بگوید استغفر الله چند بار بگوید پروردگارا ما رو بیا پشیمونم معذرت میخوام آه بکشد و حسرت بخورد زمانی که آه کشیدن و پشیمونی و حسرت و ندامت سودمند است این یک لحظه لحظه دوم وقتی خلایق جمع میشوند در پیشگاه رب العالمین در سرزمین محشر اون مخ پروردگار حال و وضعیت گناهکاران مجرمان جنایتکاران این گونه به تصویر میکشاند ولو تراییذل مجرمون ناکسور و اوسهم عند ربهم ربنا ابسرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقن اون وقت اگر نگاه بکنید که مجرمان گناهکاران جنایتکاران چگونه سرفکنده از شرمندگی و از ذلت و رسوایی سر و پایین انداختن جلو بپروردگارشون روشون نمیشود که جلو و که حاکمین سر و بالا بیاورن نگاه بکنن به پروردگارشون میگن پروردگارا ما دیدیم آیاتت در دنیا شنیدیم ما رو بر بگردان تا عمل صالح انجام بدهیم ما رو به دنیا بر بگردان همین دنیایی که الان زنده ایم همین عمر و وقت ارزشمندی که در اختیار داریم ما رو بر بگردان تا عمل صالح انجام بدهیم ما یقین و باور پیدا کرده ایم و لحظه سوم لحظه است که وقتی کفار و گناهکاران و جنایتکاران سرا زیر دوزخ و جهنم میشوند و در دوزخ و جهنم داد و جیغ و فریاد سر میآورند و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر غیرالذی كنا نعمل داد میزنن جیغ میکشن جهنمیان که پروردگارا ما را از جهنم بیرون بیاور تا عمل صالحی غیر از اون گناه ها غیر از اون معصیت ها و جنایت هایی که انجام داده ایم حالا میدونیم که چه چیزی به درد آدم میخورد عمل صالح هست عزیزان الان زنده ایم خدا رو شکر بکنیم اونهایی که مردن چیزی میطلبند که ما داریم اون انسان در حال مردن چیزی از خدا درخواست میکند که ما داریم حیات و زندگانی و عمر بیاییم ماه رمضان هم در پیش است که ان در هفته های آینده ائمه جمعه شما و دوستان بیشتر در فضیلت ماه رمضان و استقبال از اون برای شما صحبت میکنن سین همت رو بالا بزنیم توبه بکنیم استغفار بکنیم ماه شعبان در پیش است اعمال یک ساله ما کارنامه یک ساله ما در ماه شعبان پیش خدا میبرند پیغمبر علی صلوات و سلام بسیار روزه می گرفتن در ماه شعبان و میفرمودند دوست دارم که وقتی نامه من و کارنامه یک ساله من پیش خدا برده می شود من روزه باشم پس خودمون آماده بکنیم با توبه با استغفار وقتی نامه اعمالمون پیش الله برده می شود خداوند نظر بکنه به دلمون به قلبمون به اعمالمون به رفتارمون و ببینه که ما بنده توبه کاریم ایم و خازه خداوند به برکت این توبه و استغفار و رجوع من به ره بکند و گناهان گذشته منو بیامر زد. امیدوارم که خداوند به همه من توفیق بده که توبه خالصانه و نسوه و صادقانه داشته باشیم على طول عمره ببركه خداوند به همه ما عطا بفرمایند و قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم و بل لوالديي و واستغفروه انه هو الغفور الرحيم جواد وكريم برحمته وهو أرحم الراحمين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يتذكر اولو بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند همانا تنها خردمندان پند میپذیرند